و آخرین و معصومین و به همسطه دایی متعالایی و در ادله خبر دلیل سومشون تمسک به اجماع بود در بار که به اجماع کردم هم نافین خاطر اینکه که محمود سید مرتضا قدعای اجماع فرمیدن ما چون ادله نافین رو متعرض نشدیم انشالله تعالی در اونجا در بعد از این بحث عدله مسبتیم انشالله متعرض ادله نافین میشیم و بحث اجماعش رو اونجا هرزم و به مناسبت اجماع در اونجا جمع بین اجماع سیر متذاب شیخ توسی رو هم اینشالله ارزم کن در کتب اهل سنت و در کتب شیعه اصول شیعه مخصوصا هرچی متأخرتر شده. وجوه متعددی از تقریب اجماع هست مثلا یکی اجماع وجه پنجم به تبدیل مردم آی خویی در این کتاب مصباح وجه پنجم رو اجماع عملی منجمی المتشرعه من, المتشرع من زمان صحابه الى زمان نهاده هر که این اجماع عملی متشرعه یا سیره متشرعه این در کتاب بهله سنت آمده که اونها تمساک کردن به این وجه و هست در عباراتشون به عبارات مختلف آنونت هم مراجعه کرد. و اجمالا هم همینطور بوده یعنی اصل این مطلب که اثبات خیلی از احکام مخصوصا و بسمت هایی که سنته مردود به سنته به توسط خبر بوده این رو اجمالا با قبول بکنیم و جاری بود وجوه بچه دیگری رو به مناسبت اجماع سیری موزی شده ما اضافه کردند که سیری اغلا باشه یا ازش تعبیر کردن بنا اغلا تو بعضشون گفتن سیره رو به متشریعه بزنیم بنا رو به اوغلا. بعضیشون گفتن بنا رو عرف عام یا بنا رو عرف اوغلا. تعابیر مختلفی در اینجا آوردن که وجه پنجم در حقیقت اینو سیره متشریعه و سیره اوغلا با در مصادر اهل سنت این سیره اوغلا تمسک نشده، امده تمسکشون به آیه 90 و همین سیره متشریعه و صحابه و ما بعد صحابه الای و مناخازا که به خبر تمسک کردند و راههای دیگری که سابقا اشاره کردند و مرحوم و استاد در این معانی چهار وچه اجماع اشکال میکرد از کردم صادانم عمده اشعار چون اجماع در نظر آیان با کاشف از قول امام باشه در مسلک این اجماع به صورتی باشه که کاشف از قول امام باشه نیست این خلاصه اشکال یکی دو جورت گم اشکال اضافه کرده که خیلی به اصطلاح نکته خاصی نداره عمده امدهی نکتهش اینه و سیوری متشرعه را قبول فرمودن لیکن لا به ما هم متشرعه به ما هم اغلا یعنی قبول داریم که بین متشرعه این مطلب بوده ولیکن این نه اینکه متشربه به ما و متشربه به ما و مؤمنین بل به ما و این کار رو انجام دادن و لذا این آیان معاصر این آیان بزرگوار مثل مرحوم استاد مثل مرحوم آینه مثل آزیا عمده دلیلشون همین سریه عقلا بر حجیت خبر سره عمده دلیلشون ما مستلزم اینطور عمده دلیلشون برحضیت خبر سره البته عبارات مثل مرحوم ناینی و اینها که توش داره خبر موضوعان به اینجا تعبیر به خبر سره میکنم میکنه و در این وجوه اجماع اون وجه ختم که سیره باشه اونم به معنای سیره نه به ماهم متشرع هست میشه سیره این هست متشر این به ماهم اغلاب خبر عمل کردن این خلاصه بله این مطلب و در اینجا در بحث سیره بحث اشکال معروفی شده که بر توضیح اولا ما قبل از اینکه وارد بحث سیره بشیم راجع به مسئله خود اجماع و ادعای اجماع که از مرموم شیخ قدس الله نفسه شده و این اجماع را هم اینجا چهار رجع ذکر کردند. اجماع وجه نداره اجماع یکیه هم که شیخ فرموده با این وجوه دیگه شیخیه فرمونه خلاصه نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینه که ما اگر نگاه بکنیم علمای شیعه در جمعی احصاب و در زمان ایشان در جمعی احصاب اینها در مسائل فقهی و در تفریات فقهی به همین کتبی که در اختیار اصحاب ما هست اصفه من ارز کردم کتاب های مجموعه چند کتاب حریض داشته کتاب الحجی مرکوم معایات ابن امار داشته بعدها حسین مسئیب سی کتاب داشته ادهی هم سی کتاب حسین مسئیب مثل کتاب عربه زمان ما حسن محبوب رحمه الله کتاب های متعدد داشته و فسن احمد اشعری و همینطور تب نسلا بعد نسل جیلا بعد جیل اصحاب ما کتب داشتن و در مقام استنباط فقهی به همین کتب مراجعه میکردن به این روایت مراجعه میکردن شیخ مخاد ادعا بکنه نقطه مهم در کلام شیخ همه اصحاب ما که اونهایی که بغدادی بودن چه اونهایی که قومی هستن و اینشالا ارزی میکنیم این بحث رو بعد توضیح میدیم حتی امثال سیل مرتضا که به حساب استاد شیره. و مخالف هست با خبر خب ایشون مخالد بگه شما نگاه کنیشون فتاواش از خود رو از زمین رو باید به نفر ایشون فتاواش رو از همین کتب گرفته بله طبیعت کار اینه که عده ای از این کتب بعضی از رویاتش بهش عمل نشده مثلا قومیات به مجموعا از این کتاب به 50 ازش عمل کرده. بغزادی ها اددهشون به 30% ادده 25% اما اصل عمل به اخبار این جای بحث نیست و مرموم شیخ در باب اجماع وجب و جیت رو قاعده لطف میدونه وقت میگه اصلا این به قاعده لطف اثبات میشه که شاره مقدس اجای رو به اصلا دستور دادن که فرموندن عمل بکنیم به خبر که معناش وجیت خبره این خلاصی استدلال محکوم شیخ قدر الله نفسه البته محکوم شیخ همطور که عباراتش یک مقدارش در کتاب رسائل شیخ هم آمده خیلی در این بحث خودتیه از فحبت های متعدد داره که من الان جاشم اینجا حتی یک مقداری در مقدمش که در این کتابا نحن نشده بحث کیفیت تولد علم از خبر مثلا علم علم آور هست یا نه چون ارز کردم ما الان بحث نمی کنیم ما الان در کتب خودمون کلن این بحث رو نداریم اما در کتب قرم چون متکلمین وقت این بحث شدن یک بحثش این بود البته این متکلمین سبغه عقلی دادن و الا اول بحثش بحث شریه هم بود که خبر واحد مفید علم هست یا نه و اگر افاده علم بکنه به چه نکته ای مثل اون بحثه افاده ام در باب برهان نقطه ای که خبر هست این در کتاب متکلمین بوده به نحوه تفسیح یک مقدارش هم در کلمات شیخ هم موجوده چند صفحه ایشون راجع به کیفیت تولید ما الان اینجا بحث نمی کنیم اما این بحث در سابق بود ولذا بحث در سابق در بغداد در دنیای اسلام در قبل از قرن پنجم که شیخه یه بحثی بود که خبر واحد یوفیدول علم این خبر واحد یوفیدول علم دو زاویه بود یه زاویه مال حشویه و اخباری ها بود و قول خودشون سطحی نگرها ها اینا بکنم خب ما علم پیدا اون بحث دیگری بود یه بحثی هم بیامن جنبه عقلانی و جنبه کلامی و که بعدها به اسم مبارس منتر به اصطلاح جنبه این که چی این افاده علم میکنه یک بحث هم اینجوری بود از دو زاویه این بحث بحث دوم دو این بود که نه خبر لای افیده لعلم ولیکن خبر حجته علم نیز حجته این بحث دوم دو میخوام طریقه بحث در قدم هم بحث سوم هم کسانی بودن این این در ادهی هم بودن حجته ادهی موزدن ولذا منحیصال مجمور و این حساب سه تا مبنا در می آمد. یک کسانی که موزن خبر مفید علمه یک کسانی که بوزن مفید علم نیست لکن حجته یک کسانی که بوزن خبر نه مفید علم نه حجته این اسطلاح ببین تمام. ما الان ما اینجوری بحث نمی الان در کتابی که ما خوندیم اینجوری بحث نمی کنیم ما خواهم بحث رو بگم که فیاده بعد. لذا فیاده بحث لذار مثل مرمون سید مرتضا دائما میگه لعن خبر الواحد لا یفید و علمن ولا عملن علم همین معنی که عرض کردم عملم به معنی حجی نه یفید علم و نه حجته اصطلاح هم به جایی که یعنی حجت نیست به اصطلاح این روز ما میگفتن لا یفید العمل سه تا مبنای بود البته مبنای مشهور بین علماء اهل سنت که خبر الواف... واحد یفید العمل ادهش هم یفید العلم میگفتن لیکن بین خود اهل سنت عقلگراه ها مثل ادهی از ماتازله گفتن لا یوفیدو لعلم ولل عمل سهل مرددام عقیده بود لا یوفیدو لعلم ولل عمل مردم شیخ بخواستم بگنی که لا یوفیدو لعلم شیخ جزو متوسطین هم لا یوفیدو لعلم یا یوفیدو لعلم به رفت عموزیم حس مبنا البته یک نقطهی رو من شرارا عرض کردم مثل که شیخ ولو اجمالا ما خبر داریم دقیقا بخواهیم در کتاب تنزیه و استفسار رو مثلا کتابهای دیگه ایشان پیگیری بکنیم با مشکل برخورد میکنیم اصولا مروونه شه که این نوع حالت جدلی داره در بحث به خودش مدار ما از حالت جدلی یک مطلبی رو که قبول نداره برای احتجاج علت طرف مقابل میاره اینو داره مروونه شه به هر حال اشمونه چند بارم پس در خلال تهذیب بعضا می حال من خبر الواحد و اخبار الاحاد لا تفید علما ولا عملا تو خود تهذیب به این مناسبتی یک طایفه از روایاتی که مخاطرات بکنه تعبیر رو به کار میبره که مرقوم سلسله مستذها به کار می این ولی نگا حدس الله صلی الله علیه که یفید له اعمال لا یفید له علی هر حال این رو باید قبول کرد در مقدمات بعض از این کتب متالوی گفته از خود و خود چیز دیگری است علایین عبارات شیخ شاید مثلا تهذیب و در تهذیب شد اولین کتاب ایشان بوده خیلی جوان بودن 23 4 ساله دو ساله بوده خیلی در سن جوانی کتاب نوشتن اول تهذیب شاید خودی تهذیب در سینف و علاوه جوانی نوشتن خب طبیعتاً پختگی علمی نداشتن شاید وقت نکردن که این نوشته ها رو بررسی بکنند یک سر سامانی به این نوشته بدن استفسار متأخر نذاشتن بهتر از اما اما هم این مشکل داره اما خیلی جموجتر از تهذیبه تهذیب حالت تشویش داره حالت مشبشی داره و شایدم الا بهش این بوده که شیخ رضوان الله تعالی در اواخر حیاتش در فکر بودن این کتاب ها رو تقیید بکنن بکنن و ایشون یه ده سالی یا ده سالی از حوزه بغداد مجبور می شود دارن به نجف اصلا نجفی هم نبود فقط بارگاه همین رو مومنین بود از کردم چون نجف ندیگه کوفه بود کوفه شهر بود نجف حالا که مثل از خواهر مسجد جنفران اگر یادشون باشه یه مسجد خالی بود دارو باید چیزی نبود به جنفران فاصله دار نجف هم در حالت حرم تاسیس رو مومنین ا هم شهریت نظر به چه هم حوزه نش هر دو به اوهشان شهر هم شده و قبل از روی چی نبود از ح همیرونمونی یا دورشان خالی بود که مثلا مثله کیللوترتر کوفه بود لا دوربرا حرم خالی بود. بلهاممه زیارتی دست فروششان میازند مثلا یا خیم میزن اد دی دست یا دستوروش های مادداری مثلا می شد بازم باز می رفتن جمعیت باز حرم تنها بود. اما این کف ما احتمالا شیخ نرسیده آخر عمری این کتابها رو تنقیه بکنه اصولاً در خیلی از آثار شیخ ما این عدم رو میبینیم یعنی عظمت شیخ خیلی بالاست اما انصافاً این مجموعه میراس ها خالی از یک نوع تشویش نیست مقصود ایشان تا داره یک یک هم در چند سبه برگیر انسجام کامل در مقصود ایشان نیست تو خلاف ایشان مساله ایشان ادعا میکنه ادعای اجماع اصحاب برای یک فتواه میکنه با اینکه غیر از اون خود اون کتاب جای دیگه اون پیدا نمیشه در از ما یک نوع عدم انسجام رو اجمالا در کلمات شیخ میبینید این هست در رجال ایشان که تقریبا میشه گفت زیاده مشکل رجال ایشان تکرار زیاد داره اسما زبطش واضح نیست در کتاب پهسته په ایشان نسبتاً این بحث خیلی کمتره به رجاله ایشان مشکل بیشتر داره تاثیر ایشان خیلی فلسه بر عوام و صحابه و تابعین اینها داره باعث اگه بخوایم واسه این بحثا بحث, بحث سنگین است مجموعاً در مجموعه در مجموعه 41 سال که شیخ در بغداد بوده تمام معارف تقریبا حوزه ای ما کتاب داره خب این کار بزرگه انصافا حقا یوقار برای عمره انسان واحد که مثلا مرحوم هاشاوزر عمرش گذاشتن یک از ذریعه نوشته شیخ هم الفهرس باشه الفهرس رو سر ذریعه از هم حالا کتاب شیخ یک جلد کتاب مرحوم هاشاوزر 25 جلد فرضون یک دور رجال پس مرحوم آل توی 23 جلد نوشته شیخ دور رجالشون مثلا جلد اصل کار یکیه یعنی حالا که زمان ایجاد میکنه مرحومش از این جهت عظم از شیخ جای بحث نیست لیکن وقتی در خصوصیات وارد میشین در تقریبا مجموعه آثار شیخ جای مناقش فراوانه مجموعه آثار تو رجال مشکلات داره تو فهرست ایشان داره تو تحضیب و استفسار استفسار کمتره تو زیاد داره تو مقصود زیاد داره مشکلات در مقصود زیاد تره در نهایی ایشان کمتره در خلاف زیاد تره و اله آخری وارد دیگاه بحث شی یکی هم این دروای اجماعی که ایشون در اینجا فروندن و اصرار کردن عرض کردیم مصابرت اگر مراد شیخ این است که اصحاب ما اجمالاً به این کتب مراجعه کردند این درسته این مطلب اجمالش درست اگر مراد شیخ الان ایشون چهار وجه اجماع کردن. مراد شیخ این است که اصحاب ما مثل اهل سنت قائل به حجیت تعبدی خبر هستن خوب دقیق بکنیم که شارع ما رو تعبد کرده به این که خبری که دارای این میار هست قبول بکنه دارای این نکته هست قبول بکنیم میخواد مفید وصول باشه یا نواشه حجیت تعبدیم این. اونی که اهل سنت قائلا اینه دقیق بکنیم بگی خبر اگر عادل باشه راوی عادل باشه این میشه حکم الله شاید شاد شدیدترینشون رو درتون ارکد از کتاب احکام ابن حزم میگه ان نظر ل ذکر بنال اقول حافظون ذکر غیر از قران شامل خبری است که رواه و ثقتن عن ثقتن عن رسول الله اینا جزو ذکر ببین تا کجا رفته خبران رواق و, و سقتان انسقتان انرسولا جم جزه ذکره اینا احنا نزل نزلی اینم واجبه به سو قرآنی فرمان این درجه تنده بسید دقیقه نمونه اونا خود ابن حضر قایل از سقتان انسله و جل خبر رو به سقتان انسله وکن مشهورشون زدن به عدلون انعهدله این رو اگر مرحوم شیخ خواهد اثبات بکنه یکی که اصحاب ما قادر به حجیت خبر نسته اهل سنت هم ارز کردن به ذهن ما میاد من حالا چون نمیتونیم نسبت بدیم به چون من خیلی احدادت میکنم به ذهن ما میاد چون در بین مذاهب اصولی در قرن چهارم و پنجم وقتی که مذاهب اسلامی ها رو چه به خبر می نوشتن شیعه را جزو منکری خبر میدارش الان هم هست در کتب احضر سنه الان در کتب احضر سنه کتب در اصول. وقتی بحث و حجیت میاد میگه بخالق نظام و روافظ که اینا مخالفت کردن گفتن خبر لیزه بروش اصلا روافظ رو در کتب اصول جزو منکرین نه حجیت خبر این نیست که خیال که این سید مرزا گفته اجماع است که با جدنی گفت، نه کتب احل سنت هم روشتن که شیعه قالب حجیت نیست مراجع زیاد هم یکی دوزایشون نیست که من خواب یکیشون رو بگم روافض رو به عنوان منکرین حجیت و, و درست هم هست درست هم همونه اونم درسته یعنی صحیحش اینه. من توضیحاتش رو ارز کردم چند بار با که شما داریم به مجموعه احوال علمای خودمون چه علماء خوب چه بغداد چه غیرین ها حجیت خبر واحد حالا خبر ثقه یا خبر اعد یا خبر امامی یا عدل ما هرجول خیلی غیر حجیت تعبدی در کلمات اینها نیست انصافش اینه حجیت تعبدی ما نداره توی روایات هم نیست بله اصحاب ما حدیث عمر و نخلزره را هم کردن در باب تعارض و ترجیح ما توضیح دادیم که حدیث امارم نهنزله اگه میخواد در واقع ترجیح باشه باید قائل به حجیت تعبودی خبر باشه و نیست اصلا رواست امارم نهنزله نازر به حجیت تعبودی نیست نیستون دیگه چند بار اخیران گفتیم ساخران گفتیم توضیحاتش باز خواهد آمد به همین مقدار اجمع شواهدی رو که ما داریم این حکایت میکنه حجیت تعبودی خبر که فرض کنیم. مثلا حالا ما در قرم تنجم که شیخه در قرم فرسان سوم، مثل بخاری مثل مسلم قرم سوم، مثل احمد نهنبر کسانی که دنبال خبر صحیح بودن از اهل سنت تو حجت میرسن از کردیم گاهی شده که در کلمات اهل سنت خبر صحیح رو حجت میتونن ولو مخالف واقع باشه حالا همه نه نه بگم همه اشتباه نشه من کلام من هم بر همهشون شون نشه عرض کردم. مثالش رو عرض هست تو سعی بخاری سعی بخاری حدیثی نبود از اون یمنی از مادر آیشه عمر رومان خودشان هم اصلا این یمنی ها آیشه رو در کرده مادرش درد نکرده وقتی مدینه آمد عمر رومان خود کرده خب تو بخاری هم آمد البته ادهشون از اهل سندر در شراح بخاری نویشتن که قبول نکرده. حدیث رو گفتن نمیشه. این شخص اسمش مسروقه مسروق ببینه 18 یمنی این شخص ام رومان در... اما عزیزی که گفتن نه حالا در تاریخی در مکرده بخاری نهار کده به سندر سعی قبول داریم، تصورش سوال بخونه دقیقت از کنن. وضع حجیت خبر در دنیای اهل سنت واقعا یک مراتب عجیبه ای داره ما داریم در کشی که گفت امام فرموز قده پیش من ما اهل حد چطور ما ها حدیث می‌شنیدید؟ شما برای ما حدیث از استاد فرمودن که شما مثلا حدیث جابر محمد دونید گفتم بله حدیث ما قران جابر از اون من جعبه محمد در اوج عین حرفم نگفتم بی خود بنشیدم نمیشه میشه احساب خبر زمان دیگه نخریدین شما خودت تکذیبی فرگید این قضیه بنذارید وقتی سرنال کرد ما ببینید میخوام خب وضع جد خبر رو به شما بگم لذا این تحجیب نکنید شیعه به این معنا باید نبود این, م... موش... این مزمتی برای شیعه نیست چون یک بازار بسیار نامرگوطی به نامه و جید خبر با یک عرض عریضی خیلوش شده بود اصلا کنم بخوام برای شوندن نهار خیلی فرص با مثال از ابو حنیفه نهار بخوام احناف منکر این مطلبه مستر این مطلب مقدمه ابن خلدونه ایش از ابو حنیفه، که گفته از رسول الله زمان ایشون 148 ایشون رفادشتی یه سال و فنجره 17 حدیث سهر رسول الله تقریب کنیم درست ست سال بعد یعنی 241 وفات احمد بن همبل احمد ابن همبل یک میلیون و هفتصد هزار حدیث دیده که این مصند رو از اون انتخاب کرده چون تص... نسبت تو مناسید خواهی تا در قرن دو رو. ست سال بعد میشه یک میلیون و هستت هزاب اینه که بحث حجز خبر بحث زیشدار بحث اساسی است و این منقصدی برای ما نبود حالا زمان شیخ در وقتا در قرن پنجوه استاندارد علمی شده بود من نظرم اینه شخصم استاندارد علمی شده شیخ اگر میگه خبر بود نبید کنه ما همه چپ چپ بشنگاه میگه که آتو خلاف علم صحبت میخودیم بسید مسائل روز کامل خیال می کنم این مطالبی که تو میگی خلاف علم است و خلاف تحقیق است و خلاف دانشگاه است و خلاف استانداردار من فکر می کنم مرحومی شهر قدس الله نفسه و الا با مراجعه به خود کتاب تحریف و استفسار و با مراجعه به فتابای ایشان خودش که هم خب عملت به حجز خب تعبودی خبر می سه بسید این هر بار رو می خیلی جه ها شیخ فتواهاش موجوده خب گره همدلاله شیخ موجوده روایاتش هم موجوده کاملا واضحه بر اساس روایتی فتواه داده و اون روایت زهیب و سنده یعنی چی؟ یعنی به, اس... به عباس مخرا شواهد و وصوبه اغلایی و شرعی داشته برایش این راهی بوده که از حال ما رفتن از شو این مسئله حجید خبر من دارم از اون سطح بالاشون میکنم اون سطحای حالا این هشیوی و نمی‌دونم رو عاد و اهل منبر و دروغ‌ها و عراجیف و چی تو، میگه خیلی این کتاب موضوعات نیمه جزیره بخونید، اصلا میگه این آقا درست هم برای جعل حدیث بکنه، چرا سرد این جعلی که از حدیثش ماعز بذ ابو الحدیث خیلی حدیث مسخره جعل کرده. یک اوضاعیه و یک اصلا واقعا شرم‌آور یک مقدارش کردیم که حالا درو بکنه. می‌خوام بگم من دست اولاش نه نه میگم دست دوماشو خود تو ابو حنیفه که رئیس مذهب است در مقابل احمد بن حنبل که اون رئیس مذهبه این میگه 1700 حدیث اون 1 میلیون و 700 هزار حدیث شده خود مصنف از دیگه 30 هزار حدیث 29 قربه‌ای از دیگه 30 هزار حدیث خود مصنف هم تفاوت کار رو در نظر لزوما اخرین مطلب و یک نکته هم باید اینو ما قبول بکنیم ما اول بحث کنیم انصافا الان در دنیای اسلام تقریبا میشه گفت که منحیص مجموع بالای 90 درصد سنن رسول الله به خبر به ما اینم با قبول کرده ما اون برای چه گفتیم این برای این یک واقعیتیه یعنی اگر کسی بنابشه که بگه خبر کلند این کنار واقعا 90 درصد سنن پیغمبر از روی میزه اینه نیش رب رو این کرد و لذا از خیلی مثل ابن هزم اصرار داره یعنی این یک چیزی در وجدان مسلمان ها بود اینی که مرمون شیخ با این مسئله بدفرد میکنه این واقعیته واقعیت یعنی این واقعیت هم باید قبول بکنی چون قرآن به صورت مکتوب به ما رسیده خبر و سنن رسول الله به صورت مکتوب به ما نرسیده خوب ده خطیقه مشکل روشن شد از اون طرف افرادهایی انجام گرفته از این طرف هم اگر ط میگفتیم خبر بود جدید یعنی گفت تحسیل دین جدید همه رو دور دیگه چیزی اون قسمت دوم شریعت که سنته بخش دوم این واقعا آسیب جدی میخوره واقعا نه این حالا من بخوام مجامله بکنم اینه که ما چه کرد این بحثی بوده ما معتقدیم اون چه که اصحاب ما انجام دادن بیشتر رجوع به شواهد و فراهم بود من خلاصه بکنم و اون روایاتی که ما مفصل خوندیم واجب به حجز خبر غیره دیگه حالا ادهشون مرون به خبر نبود اون هم ارجاع به شواهد و قرائم بود اون هم چیز خاصی نبود البته بعضی هاش رو به بعضی از معاملی شد تعبط معنای تعبط رو همی دادیم لیکن انصافاً به نحس المجموع این بود بله من شراراً عرض کردم جایی که نزدیکتر بود به مبدع علم خواهی نخواهی شواهد شواهد تجمیع شواهد تر بود بخش تعبدش کمتر بود من مثل اصلا برای روباط اصحاب ما که در مدینه بودن خیلی راحتتر بود اما همین روباط که من در کوفه که از امام دور بودن اصلا مشکل بخش روایتی ما قید از بخش روایی که اهل سنت دارن مشکل بخش تولید علم ما خود این معارف از اهل در مدینه صادر شده بحث امامین همامه‌ی سلام الله علیهما و در کوفه تدوین شده این تفاوت به کمی ایجاد اشکالی بعد از اون دو مرتبه در بغداد اینها تصحیح و ارزیابی شده باز هم مهتر بغداد به خاطر به بکوفه و بررسی نسخ بهتره مثل کتب ابن عبی عمر و یونس و هشامین حکم و هشامین ساله اینا انصاف خیلی بهتره این آثار خیلی نبیه هم باز برای یعنی تقریبا همزمان او از حدود سالهای دیویس در قم تنقیه و تصیح و بازنگری شد توی بخش قوم عناصر شواش تعبود بیشتر شد یعنی اناسری که شاید مثلا به جای تعبود بگیم رجوع وقرائن خاص این در بغداد و در کوفه رجوع به آمن و اغلایی بیشتر بود چون ده ها کتاب موجود بود اینا رو مقایسه میکردن نسخ رو بررسی میکردن اوچنانشون خیلی واضح بود زمان احمه می رفتن یا حج یا عمره به مدینه می از ما تقرد کرده وقتی می آده قوم خواهی نخالی کار مشکلتر میشه. شه و مثلا فرصان سمرقن خلافون <تصفيق> برای خراسان الانش هم دوره از ارگاه ما دوره مثلا کتاب رجالی که مازمه بنامجال کشی در سمرقن این خیلی خرابی داره این جنبه های تعبود توی زیاد رفته خرابی، سرد، سند، مرد بر اثر دور بودن از حوضه ها پس فنابرای و این جور افراد که دورن خواهی نخواهی به خبر بیشتر اعتنام میکنن این جنبه تعباد بیشتر میشه لذا اشکردیم با مجموعه شواهد ما چه در کوفه چه در بغداد اول بغداد اول از سالهای سال 50 شروع میشهتون قدر سالهای سی سر. در بغداد اول انصافاً شواهد و برای قبول خبر بیشتره در قوم که از حدود دیویز شروع میشه تا چار که این مرحله بازسازی خبره باز مرحله هرزیابیه یکی ادر قبول میکنن یکی ادر رد میکنن بررسی میکنن در اینجا تعبدش بیشتره یعنی مثلا بیشترین قراره رو که در قوم حساب میکردم قبول مشایخ بود بین مشایح قم جا افتاده باشه اما در خود کوفه و بغداد بیشترین قرائن قرائن و بود یا قرائن عمومی دینی که الان عرض می چون وقت آخره من ترخیص میکنم کم و اما در بغداد دو بغداد دو از حدود سالهای سیستد و شروع میشه و با خروج شیخ این یعنی 450 تقریبا از نجر از بغداد اونم 320 تخمینا تمام میشه این بغداد دوست من کران از اون چیزی که ما الان همین الان در خدمت شما نشستم و این حوزه های ما الان داره 90 ما این بغداد دوست 90 درصد اون چی که الان ولزا اگر مکتب بغداد دو رو ما شروع کنیم به تنقید و انتقاد و بررسی 90 درصدش جای بحث داره 90 درصد معلوماتی که الان ما در حوضه ها های مختلف چه قوم چه نجب چه دیگران اصلا مجموعه معارف شیعه داریم بر میگذه به, به بغداد دو این بر میده بغداد دو اینم که گفتن 200 سال مقلد شیخ این مرادش این اینه و ما ارز کردیمان خدمت نخل... تا الان مقلد شیخ سال مقلد شیخ هم لیکن مقلد به این معنا. شیخ گفته سه طلا آقا ضعیفه، آوین توجه نکنه گفتن برای ضعیفه. حالا اگه بررسی بشه منو چنین قاضی نیست واسه. یه گفته فلان آقا تق... واقفیه عده زیادی در تاریخ ما روازشه واسه طرد کردن چون شیخ گفته. کسی هم به شیخ نگفته. بعدم گفتیم نه آقا این کلام شیخ روشن نیست. ببینید مراد ما اینه. اینا نه اینکه مقلد شیخ کلام شیخ رو مبدع و حجت قرار دادن. طبق کلام شیخ گفتن واقعی حدیث رد کرده. ما الان که میایم بررسی میکنیم واقعی بودن اینشان روشن نیست خب می فرق ما هم اگر بنا و همون حرفی که مرحوم شیخ گفته به جن ما اجمال مطلب رو دیالا اینجا چون بحث اجمال هست یه بارم که این بحثا عرض کردیم یه بار دیگه من این اجمال مطلب در قرائن را عرض میکنم که این فوق العاده برای شما مفید این جنبندی کل این مطالب از کردم ما در موارد خبر سه بحث رو باید در نظر بگیریم. یکی صدور خبر که بیشتر الان خودجهت خبر مواد صدورشه دو مضمون و حکمی که در خبر آمده سه متن خبر اصلا بحث در واسطه متن خبر بیشتر این کارهایی که از هوای ما و علمای اهل سنت در باب خبر انجام دادن در درجه اول مال صدوره در درجه دوم مال مضمونه متن خیلی کم تره کاری که رو متن شده کارای چه سنیا ها چه ما ما ها که تقریبا مخصوصا از زمان مثل وسایل بعد دیگه اصلا اون متن حتی قبلش هم کار اساسی نکرده مفهوم اصحاب ماعلم کتاب اینا منتقا داره ایشون شده اولین کسی در علمای ما و بیگ همان آخرین کسی چون خیلی بعد ازشون پیگیر نکرده که احادیث رو بد متن‌هاش رو با هم مقایسه کرده که در کافی اینجور تعذیر ببینید طوری فنی حگاوزه اینطور رحلام اجرا ما این راه مرموم صاحبه ما عالمم پیگیری نشد شما تو جواهه اون کارها را خیلی کم می هست بایی رو مردم کار می کن. اما یک سنت رسمی نیست اون وقت ارز کردیم در این سمت لحب صدور و مضمون یعنی حکمی که در خبر هست و من می شود سه چور قرینه رو در نظر گیرم سه نقطه و سه محور رو در نظر گیرم یک محور اغلایی دو محور دینی که مراد ما از اطلاقات کتاب و سنت و اون چیزی که عامه مسلمین قبول داره سه محور مذهبی یعنی اون چی در شیعه برخصوص هست در حرز که اگر بخویم نگاه بکنیم مجموعاً میشه 9 نکته به اصطلاح نه قرینه و 9 نکته سه تا راجع به صدور سه تا به مضمون و سه تا هم راجع به متن وقت ما توضیحش صابر هست اما راجع به صدور یه شواهد اغلاوی در اینجا ادهی همینجور مثل بقیه منوان ادهی میگن ما برای قبول خبر برگردیم در شواهد صدور به شواهد اغلاوی این اون مثلا این کلام رو رو چه در مقابل این کسانی که قائلن به تعب بودن در همین بحث اغلاویش مثل مرموم استاد آی خوی آی خوی قائلا به این که اغلا خبر سقه رو تعب حجت پس محور اول اغلایی شد در این محور یک رعی داریم به حجیت تعبودی در مقابل حجیت تعبودی نیست که مثلا پس که امروزه خیلی از کسایی که دنبال بحث می افتن سر با شواهد و صدور رو اثبات میکنم این به محور بحث در دوم محور دوم شواهد دینی در این جا هم از علمای ما ادهی بودن که بگفتن ما با طبق شواهد دینی عکس به شواهد کتاب و سنت بکنیم، تا بگیم این خبر صادره در مقابل این شواهد کسانی که قائل به حجیت تعبدی بودن این حجیت تعبدی رو بیشتر ما تو سنیا داریم چون شیعه هم داریم اما بیشتر تو سنیا اونا معتقدن از ظاهر آیه مبارکه اینجا اکن فاسقون به در میاد که خبرالعدل و حجت تن تعبدن این مراد ما از بخش دوم که دینی باشه بخش سوم س... یعنی قسمت سوم محور سوم شواهد مذهبی مراد ما از شواهد مذهبی شواهدی باشه که در حوزه های شیعه و در محیط شیعه اقامه شده باشه اینجا هم ازگرد ادهه قائل هم که ما به مجموعه شواهد برمیگردیم مثلا روایت در چند تا مستر آماده چند تا صندت داره چی جوریه متن روایت ما مجموعه شواهد مذهبی رو نگاه میکنیم تا یه خبر به قبول بخونیم در قبال این این مبنا مبنای کسانی مثل ها که نه ما تعبد داریم هر خبری رو که در کتاب مشهور قبول بود، تعبد داریم پس سه تا محور شد در هر محور یک حجیت تعبودی هست در مقابل عدم حجیت باشن شد اگر حجیت تعبودی قبول کردیم خبر سقه در محور اول حجیت اغلا حجیت تعبودی در محور دوم خبر از در محور سوم کسانی که گفتن اعیمه دستور دادن شما مراکبه کنید به کتاب مشهور مثل سال وسائل ایشون میگه هر حدیثی که در یکی از کتاب مشهور باشه حجیت. این مبنای است. در مقابل کسایی که نرفی میکنن خودجیت را هر را رو میکنن هم اغلایی شو هم دینی شو و هم این مبنای کسانی که اصلا خودجیت صدوری رو رفتن مثل مرحوم سید مرتزا اصلا دنبال صدور نیست مثل مثل من. این ها دنبال در مقابل صدور کسانی که دنبال مضمون خود خود کار ندارن در اینجا همونطور سه مسلک یک مسلک عقلایی یعنی به این معنا ما احکامی رو قبول کار به خبر ندادن احکامی رو قبول دیگه با اساس عقل جور در بیاد امروزه زیاد از این قلی بریا توی روشن فکرای مذهبی گاهی بشون امروزه این زیاده که مضمون رو میبرن با شواهد عقلایی و علمی روشن شد دو کسانی هستند که, هستن. که مضمون رو میبرن با شواهد دینی حکمی رو قبول میکنیم که شواهد کتاب و سنت برش باشه این تو سنیام دارن تو ما هم داریم خیلی زیاد نیست سه کسانی که حکم رو شواهد مذهبی که سید مرتضی بینه. اصولاً مسلک سید مرتضی جاش اینجاست البته ایشون شواهد دینام قبول میکنه. لكن شواهد مذهبی رو هم خیلی و شواهد مذهبی دو جوره یعنی شواهد مذهبی گاهی اقامه میشه بر خبر این مسلک قومی هاست گاهی شواهد مذهبی قائم میشه بر مضمون این شواهد مسلک سید مرتضیات برقرار کنیم اینی که سید مرتضی به جو خبر یه اجماع ذین و اجماع هر اجماع اجماع یعنی چی یعنی شواهد مذهبی بر مزمون این مورد از اجماع اینه خوب دقت کردین این زرافت کار روشن شد پس هر به بین قومی ها مثل مرحوم شیخ صدوق با مرحوم سید مرتضی شیخ صدوقم شواهد مذهبی رو مقدم میکنه. یعنی شواهد مذهبی پیش‌دستی شیخ صدوق یک به خبر میرسه شیخ سید مرتضی به خبر نمیرسه به مضمون می‌رسه، اشتباه نکنید. دو شواهد مذهبی پیش مرحوم سید مرتضی به عمل شیوخ و اعتقاد بر شیوخ و وجودش در اصول و مصنفات مشهوره سیف فلان این مبنای شیخ سید مرتضا این اصول و مصنفات و خبر و صدور اون اصلا کار نمی تمام تمام کارشون مضمونه بین اصحاب تلقیه به قبول بشه خوب بگر کنیم روشن شد تلقیه به قبول بین اصحاب که مرادش هم بیشتر شبارد ما حاکیست که اصحاب بغداده آن در متن هم سه محور هست بحث های مرد خیلی سنگین نیست بحث سنگین اینه این دوتاست از همهش هم سنگین تر صدوره در بید ما الان در زمان ما در این روشن بگیره مذهبی بیشتر اصلا رو مضمون اونم با مقابله علم و مثلا تمدن و فرهنگ و تاریخ و مضمون خبر مطابق با شواهد تاریخی و مطابق با علم و مطابق با عقل و با ادراکات علمی رایی که الان از کردم پس برابر این کاملا روشن شد که دستبندی ها. افکار در کجاست اصلا معنیشون یه مطلب خاصی است اون خیلی روش مثلا کار شده اما نه اون میزاری که استحقاق داشته وارد اون بحث نمیشیم چون اونم هم همینطوره شواهد اوقالی داره ممکن است یک متن در یک جایی باشه اما میگیم شواهد اوقالی نشون میده که این متن با جور دیگری باشه یا شواهد دینی ما نشون میدهیم این با سایر مثالاش ذکر کردم حالا نمیخوام وارد بحث بشن. و توضیحات اون قسمت مرد می باشی جه فعلا این دو قسمته خود ما هم اون این شد که مجموعه کلیه شواهد نگاه میکنیم طبیعتا در درجه اول صدور اگر شواهد صدور کافی نبود اون وقت به مزمون و حکم میگیم و علا کل تقدیرم در مقام کم و زیادی که میشه شواهد بیشترین شواهد پیش ما شواهد مذهبه اون نتیجه نهایی سعی می شواهد و رو پیدا بکنیم سعی می کنیم شواهد دین رو پیدا بکنیم لکن در اون چون گاهی با هم کم و زیاد پیدا می کنند. اون نتیجه نهایی شواهد به اسلام مذهبه و شبیه به یک معنای قومی ها و حتی شاید شبیه مرمون شیخ مفید معتقدیم که من حیث المجموع از مجموعه قرآن و روایات احل بید و تلقی ها، این تلقی اون روایت نفس باشه تلقی اون و کتب اصحاب ما به مقدار کافی وصور و اطمینان به کام الهی پیدا بکنیم خلاصه دلیل انصداد هم هر به انصداد نمیرسه کار مجموعه شواهد مذهبی شواهد عقلی و اغلایی و دینی و مذهبی به مقداری که ما حتی به صدور وصور پیدا میکنیم بله اگر به وصول وصول پیدا نکردیم انصافا میرسه به مسئله مضمون و اون راهی که سید مرتضا رفته اگر به وصول به صدور پیدا نشد بهترین راه همون است که سید مرتضا رفته و همون اگر زمین رو شواهد دینی رو یعنی شواهدی که در فرآن و سنت هست اونم به زمین بهشون به این راه تا که با کارهایی که ما در حدیث کردیم این برای ما روشنه که می مقدار زیادی معتنابه به حیثی که وافی به فقه باشه و شریعت حفظ بشه مقدار زیادی رو از مجموعه روایات فعلا پیدا بکنیم به برکت جهودی که اهل بیت انجام دادن و بعد علمای ما این تا اینجا راجع به اجماع هر راجع به سیره ان شاء الله آیا این سیره قابل قبول هست یا نه یا مشکلات داره